و اطراف زم安 علامت تأنيس. و یعنی یعنی علامت به میچسبه علامت تنیز کنیم؟ زربت تا یا تذربه درست علامت تنیس یعنی تای تنیز بهش میچسبه طلازم و فعله علامت تنیس امکان فائل و هست ظاهرن حقیقیت امکان فائل و فعله اگر باشد فائل ظاهرند یعنی اسمان ظاهران اگر باشد فائل فیل اسم ظاهر اونم اسم ظاهری که حقیقی یا تنیس فنیسشان چیه حقیقی است آه؟ یعنی ماده هستش آه؟ در مقابل نرید دارد حقیقی و تنیسه پس اگر فائل ما اسم ظاهر حقیقی و تنیسه فیل لازم است که با چی بیار؟ با و تا علامت تردیس یعنی باید گفت قالت فاطمه تو قالت فاطمه تو آه. چرا چون فاطمه مهندس است و اسم ظاهره و فائل فیر هم واقع شو. مشخص و لازم و لفعلت و تنیز امکان فعاله و ظاهرن حقیقیت تنیز که قامت هندون قامت هندون قامت هندون و نمیشه گفت آمد بگید هندون مزکر نمیشه بعد باید علامت تنیز رو بهش مفرد این یک مورد او زمیرن متسلن مطلقا مطلقا یعنی چون زمیر مال محننس حقیقی باشد چون زمیر مال محننس مجازی باشد یا زمیرن زمیرن عطف به جای ظاهرن یعنی یا اینکه باشد فاعل فهر زمیر فعال فعل زمیر است حالا این زمیر زمیر متصل هم هست زمیر منفصل نیست زمیر متصل مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این زمیر برگردد به مهنس حقیقی چه برگردد به مهنس مجازی واجب است که تا داشته باشه فعل. مثل این مثال کنیم هندون قامت الان دوییدون مبتدام قامت فعل زمیر چیه؟ فاعلشه چرا چون جمعه خبره دیگه؟ مشخص؟ قامت فعل زمیره هیه مستطر در او چیه؟ فاعلشه زمیره هیهه متصله زمیره متصله دیگه مستتر مستطره که نیست زمیر هیه مستتر در او چی؟ فائلش استتارشان استتار جایزی و این جمله قامت خبر هند حالا اون زمیر به کی برمیگرده؟ زمیر برمیگرده به هند مهنس حقیقیه که فعل بشه چی؟ خامل و شمس و عین این نیست از شمس و منتدار طلعت فعل و فائل خبرش و زمین داخل تلعت که هیه هستش به کی برمیگرده؟ به شمس و شمس محننس حقیقی برکه محننس پس دو جا تا حالا خوندیم که واجب تایی تنیز یک جایی که فائل اسم ظاهر محننس حقیقی بشه دو جایی که فائل ضمیره و برمیگرده به مهندس حالا مؤنثش مؤنث مهنس حقیقی باشد یا مؤنث مجازی باشد فرقی و ولکل خیارو خیار یعنی اختیار ولکل اختیارو و برای تو است اختیار یعنی چی مختاری مختاری یعنی چی میتونی تا بیاری میتونی تا نه هر دو جهاز و لکن خیار مع از ظاهر لفظی با فائلی که اسم ظاهره و هم مهندسش هم مهندس چیه؟ لفظیه یعنی مهندس نجازیه مشخصه مهندس حقیقی پس اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث لفظی شد در اینجا جایز است فم رو چی بیاریم مؤنث بیاری جایز است مذکر ولکن خيار و مع ظاهر لفظی بیاری. مثال کتلعت تا دارد مؤنث او تلعت تا ندارد اشامصو اشامصو چیه پس فایل اگر اسم ظاهر مهندس مجازی شد جایز از که فعلش با تا بیاید جایز از بدون تا اما ببینید تلعت رو جلوتر از تلعه نوشت با آوردن در اینجا چیه؟ بهتر. هر دو برای شما خیارش هست هر کدوم بگید کلام کلام است و درست اما کدومش بهتره؟ با آوردن بهتره خلاصه اون مهندس اگه چون معنیسیتش بلاویست نظامیشو بدون تا هم درست و یترد جهو ذکروها یترد جهو یه ترجیح داره ترجیح داره ذکروها ذکر تایه تنیست آوردن تایتنیز ترجیح دارد محل فصل به غیر الله در صورتی که فاصله شده باشد بین فل محل یعنی در صورتی که فاصله شده باشد بین فعل و فایل با غیر کلمه الله است. با یک کلمه دیگه آمد الان نباه کنید بگید قامت هندون فل مدرسته قامت هندون فل مدرسته اینجا واجبه که تا بیاریم چرا؟ به دلیل اینکه مهندنس حقیقیست اسم ظاهره بعد از فل مورد اول دیگه قامت هندون فل مدرسه حالا فل مدرسته رو بیارید بین قامت و هند فاصله کنیم این مفعولش مقدم شده مفعول به واسدهش پرفاهه میشه چی؟ قامت فلمدرسته هندون یه قامت فلم فلمدرسته جهان و متعلق به قامت اندون فائل اینجا الان بین فلم و فائلش چی فاصله کرده؟ غیر الا الا الای استثنائیه نیست مشخصه غیر الا فاصله کرده در اینجا جایز است شما قامه هم بگیر بگویی جایز الان تو همین مثال بگیر قامه فیل مدرساته چی؟ هندو ولی کدومش بهتره؟ قامت بهتره. درست معلومه این بحث در کجا میاد بگیر در مهندس حقیقی چون مهندس حقیقیه که جایز نیست بدون فاصله ما تارو نزید ولو در مهندس مجازی اصلا فاصله هم نشه جایز چکار کنیم؟ دارو بینوزیم میگه وگه ترجه و, و ذکرها مع فصله به غیر الله جایز است ترجیح دارد ذکر تا بکنیم با فاصله شدن بین فعل و فاعل اونم فائل مهندس حقیقی با غیر الله فاصله شده باشه با غیر الله نه و دخلت دخلت بهتر است از دخلت دخلت یا دخلت اداره اد اداره اد چگاه کرده؟ فاصله کرده مفیلونه دقیقه دقیقه داره هندون اگر این دار رو ببریم اونور هند دیگه دقیقه میشه؟ غلط میشه باید حتما گفت چی؟ دقیقه چرا؟ چون فایل مهندس حقیقی درست بعد از فیل میشه خب این گفت یه ترجه و ذكروها. حالا میگه و ترکوها ترکوها اتفاست به جای ها. یعنی و یه ترجه و ترکوها خوب است که ما تا رو ترک کنیم اگر چه جایز است که چی ذکرشان بکنیم ولی نیاریم بهتره و ترکوها مالفصل ما به ها با فاصله شدن بین فیر و فایل فایل محنس حقیقی اسم ظاهر بین فیر و فایل محنس حقیقی اسم ظاهر فاصله بشه به ها با اله اگر فاصله بشه با اله بهتر است که تا آورده نه مثال ما قامه الا امراتون نه مگر بگی زنی نه استاد مگر زنی امراتون فایل قامه امراتون فایل قامه عرضشو ما فایل فاعل بهتر است که اینجا قامه گفت تا قام این استثناء رو بهش میگن استثناء مفرغ قبلا براتون اینو گفتیم ها تو عوامل این استثناء استثناء چیه مفرغ یعنی مستثنامن منه شده یعنی مستثنامن هزف شده چون ببینید ما قبل الله چیزی هستش که مستثنامه باشه نه نگفته ما قامل قومه الله امره مستثنامه این بگی هزف شده مستثنامه هزف شده و عامل عامل بر سر مستثنا در اومده مستثنامه که فایل قامل بوده هزف شده و قامت که آمله بر سر امرهتون در مده. یعنی امرهتون شده فایل قامت ها لذا اینه بشه میگن استثناء مفرمه پس در واقع امرهتون فایل حقیقی قامت نیست فایل حقیقیش که بوده مستثنابه نه مستثنامنه محضور الان فائل در لفظه و فائل در عبارت چیه؟ امرهتون یعنی بعد از اینکه که فائل حقیقی شد امرهتون اومد و جال بشین شد الله امرهتون حالا مستثنامنه چی بوده؟ این طور بوده ماقامه اهدون الا امرأتون ما قامه اهدون الا امرأتون یا امرأتون خب ما قامه اهدون الا امرأتون یعنی چی؟ نه استاد اهدی مگر خانومی یه خانوم باشه تو جلسه هیچ کس باید نستاد مگر یه خانوم خب اگر اهد ذکر می فعل رو باید چجوری میابردیم؟ مزکر میابردیم چرا چون عهد چیه؟ مزکر حالا که عهد نیست امرهتون هست شده فائل چی؟ میگه میتونیم مهندنس بیارید یعنی اگر شما مذکر بیارید مراهات چی رو کردید؟ مهنده فائل حقیقی شده که عهده و اگر بگید مهندنس بیارید مراهات چی رو کردید؟ مراهات مجازی شده ها؟ فائل غلابی شد که که تازه فاصله هم بین و چیه حالا مراهات فائل حقیقی بهتره یا مراهات فائل مجازی با واسطه و فاصله حقیقی لذا میگه چی؟ بهتره که تا آورده ما قامه الله یه مورد از جایی که ترک تا بهتره مورد دوم و کذا فی باب نعمه و بیسته که بهش میگه افعال مدهوزن در اینها هم اگر فائلش معنیس حقیقی باشد معنیس مجلسی باشد جایز الوچه این اگر معنیس حقیقی باشد جایز از که شما چی؟ تابیاری جایز از تا نیارید ولی کدومش بهتره؟ واردن. نیاوردن تا بهتره مثل نعم المرعت و هندون که جایز هست بگیم نعمت المرعت و چی؟ جایز هست مرعتو یا نعمتل مرعتو نعمل مرعتو یا نعمتل مرعتو هر دو جایزه اما کدومش بهتره چطور ببینید اون الفلام المرع رو من یادتون باشه تو باب کتاب عوامل گفتم که الفلام رو میگن الفلام جنس یعنی ما یک بار جنس زن رو معد میکنیم بعد در بین جنس زن هم میایم هندو مخصوصه به معد میکنیم و معدش میشه دوبله اینو گفتیم بعضی ها که میگن اینجا مزکر به قول معروف تقدیر میگیریم یعنی نعمه رو مزکر بگیریم بهتره مثل ایشون که همه میگن میگن چون در واقع انگار گفتیم نعمت جنس المرعته چون از المرعه ما اراده جنس کردیم نه اراده زن خاص جنس کردیم و کلمه جنس مذکره و کلمه جنس چیه؟ مذکره پس بهتره که چی بیاد انگار ما گفتیم نعمت جنس المرعته اگر می گفتیم نعمت جنس و باید بدون تا می آوردیم واجب بود چون جنس مذکره حالا جنس رو نه گفتیم المرعت رو آوردیم آه. انگار مضاف رو انداختیم مضاف و نه یا جاش پس ما اگر مراعات اصل معنا رو بکنیم یعنی مراعات فائل اصلی رو بکنیم که کلمه جنسه باید چی بیاریم؟ مذکر ولی اگه مراهات فایل صاحبی رو بکنیم اینی که الان فایل شده و مرفوع کدومه المرعه است و از جنس خبری نیست اگه مرات این معنا رو بکنیم المرعه مراهات بکنیم باید تایی تنیست پس اگر مراهات فایل حقیقی کردیم که کلمه جنس است و مذکر مذکرها آورده بید اگر فایل فایل ظاهری که الان المرعه مرفوع است و جای جنس نشسته است و فایله اینو کردیم تایی تنیز میادیم هر دو جایی است اما مراهات فایله حقیقی که جنس است باز بهتر است از مراهات فایله قلابی و جازی که نه است نعمل هندو هند چند تا ترکیب داشت؟ دوتا چی بود؟ یکی مبتدای ما و یکی خبر برای مبتدای محظوف چه شکلی محظوفه؟ وجوب خب تمام شد پس بحث تایتنیز تمام شد دو سه تا مثال بیشتر نمیخواه قامت هندون وجوب دارد آه. هندون قامت و از شمسو باز وجوب دارد تلعت یا تلعت شمس مختاری و دخلت یا دخلت داره هندون مختاری اما بهتره که تو رو ذکر کنی و ما قام الله امرعتون و نه عمل و هندون بهتر از که تو رو ذکر نکنی کل عبارت وازدباره براتون درایلش رو هم تا اونجایی که میشه دیمونم شده مقام مثلا شما باشه چی باشه اونستان آخه لفظ مستثنامه که تقدیر میگیرن در استثناء مفرق اهدونه کرفتیم؟ لفظی رو که در مستثنای مفرق تقدیر میگیرن به عنوان مستثنامه <تصفيق> اهدونه خب مسئله داره. مسئله یه مسئله میخواد بگیم میگه وله اصل اصل در اینجور مواقع اصل در عدویات عرب دو تا معنا داره ولی اون معنایی که اینجا مورد نظر اینیه که دارم بهتون اصل یعنی ماین بقی ان یکون ین بقی واقعی ماین بقی ان یکون اینو میگن اصل یعنی چی ما یم بقی ان یعنی چیزی که شایسته است باشد سلام دارم. چیزی که شایسته است باشد آه. یعنی شایستگی دارد این مطلب ما یم بقی یکونه نش بیان است ببینید چیزی که شایستگی دارد باشد وجود که نمیفهمه ها ممکنه یه جایی هم نشه ولی اگر نشد باید انلتش رو سوال کرد ما مثلا فرض کنید میگیم شایسته است که زید در این مدرسه صرف بگویم شایسته است اصلی روی که زید دست بگیم صرف رو. چرا چون زید استاد است زید در صرف کار کرده بهتره که زید بگیم خب یعنی اگر ما بیایم بیدلیل زید رو حضب بکنیم کاره چی کردیم؟ عوضی کردیم اصل اینه که زید چون استاده زید سر یه بعد اما اگر یه روزی اومدیم دیدیم امر داره جایز زید درس میده زید رو از مدرسه بیرون کردن یا نه. سوال میکنیم میگه چرا زید نیست اونجا باید به ما چی کنن جواب بدن بگم مثلا زید وقت نداشت یا زید مریض بود یا راهش دور بود و ما نتونستیم ازش اینه علت داشته باشه در ادبیاتم هم همینه این اصلهایی که میخونیم اگر طبق قانون بیا همون چیزی که اصل یم بقیه یکونه کسی سوال ازش نمیخونه اما اگر خلافش شد حتما باید دلیل داشته باشیم حتما باید دلیل داشته باشیم به علتی خلاف اصل کنیم و علا غلط نیست مثلا ما میگیم اصل که مفعول بعد از فعل باشه اصل که مفعول چیه؟ بعد از فعل باشه چون مفعول معمول فعله و معمول باید بعد از عاملش باشه این اصله اگر اومدیم گفتیم نعبدو که نعبدو که عبادت میکنیم تو را کسی سوال نمیکنه میگه و فعل زمیر فائلش کاف مفعوله همه سر جای بودشون تبقه اصل یه سوال نه ولی اگر یه موقع اومدیم و گفتیم یاکن عباد؟ ها رو چکای کردیم مقدم کردیم و زمین متصدی تبدیل به منفصلی شد گفتیم یاکن عبود اینجا خلاف اصلی کردیم خلاف ماین بقیه انگکون کردیم طرف سوال از اول میکنم که چی؟ که چرا این کار کردیم چرا ایا که مقدم شد؟ اگه بگیم یک همینطوری همینطوری خلاف حصل نمیشه کرد ولی اگر برگشت کن ما اینو مقدم کردیم تا اینکه که حصر را بفهمانه چون هر چیزی که حقش محقر شدنه اگر مقدم شد مفیده حصله ها اگر به ما همچین جوابی رو داد میگیم احسن وارد درسته اگر خلاف حصل کردیم منباب قرزی منباب احسن این معنای اصل یک رسم یعنی پنجاه در سر اصل هایی که در به کار میره از این یک اصل دیگری هم هست که در جای دیگر به کار میره میگن اصل فلان چیز است که حالا اون موقعی که رسید بهتون بگیر اصل اینجا به معنای چی شد؟ ماین بقی من یک نگاه کنیم وله اصل و فلفائله تقدم و حوالر مفغور اصل در فائل اینه که مقدم بشه بر مفقود اصل اینه که فائل مقدم باشه بر مفقود این اصله پس ضرب سیدون امرن چیه اصل تبقه اصل وله اصل و فائل تقدمه و علم مفقود از این عبارت شما چی میفهمید؟ که گاهی اوقات هم میشه که مفقود بر فائل چی بشه مقدم بشه اما اونجا باید علتی هم داشته باشه. نظام میگه ویج بزالک میگه اما بعضی جاها هستش که فائل واجب مقدم بشه یعنی دیگه اجازه نمیدیم که مفعول مقدم بشه خب اگر خواست واجب بشه مقدم شدن فائل بر مفعول باید دارای چی باشه. علتی بشه آه. علت داشته باشه. حالا نگاه کنید و یجب ذلك واجب است این این یعنی چی مقدم شدن فاعل بعد این اصل واجب می شود این اصل بگید واجب می شود اذا خیف اللبس در چند جا یک جایی که خیف لبس خيفه خافه مشولش خیز ترسیده شود لابس لابس یه چی؟ اشتباه شدن اشتباه شدن فایل به مفعول چی بشه؟ اگر ما مفعول رو مقدم بر فایل کنیم اشتباه کنیم مثلا میگاه کنیم من بگن زربه موسا ایسا زربه موسا ایسا یعنی چی؟ زربه فیل موسا فایل ایسا مفغول. هر دوشون چون مقصورن احرابشون ظاهر نمیشه حالا شما از کجا فهمیدید که موسا فایل ایسا مفغوله از مقدم شدن حالا اگر مح... ما اومدیم واقعا هم موسا ایسا رو بود ولی ما اومدیم ایسا رو مقدم کردیم اون مخاطبه ما چی میفهمه میفهمه که ایسا موسا رو زده آه؟ عکس میفهمه دیگه چون راهی برای شناختن به قول معروف فایل و مفغول قیل از مکانی که واقع میشن بگید مستش. یعنی قرینه برای شناختن فایل و مفهول بقید مکانی گاهی اوقات هستش مثل موسایس هست گاهی اوقات مثل هر دو مبنی هست هر دو مبنی مثل که میگیم کی کیا زد میگیم زربه هازا زاکه زربه هازا کرد این آن را زد زد این آن را زره و هازا که الان کدوم فایله؟ هازا کدوم مفعوله؟ زره که اگر جا به بشه ما که محرفو بودن و منصوب بودنشون معلوم نیست که اینجا محلیه مشخص یا مثل که هر دو مضافه به یار متکلم باشن که باز احرامش تقدیلی بود مثل زره و غلامی ابنی زره غلامی ابنی یعنی چی زد غلام من پسرم بود حالا اگر ما بیایم جابجا جا کنیم چی خب میشه زد پسرم غلام این اینجور جاها احتمال چی داره اشتباه داره نمیشه ولی در یه جاهایی باشه که احتمال اشتباه نباشه مثل این عکله. حالا تو هدایم همین مثال داره. عکلا آل کم با آل سه, سه نقطه کم می نیسم کم مسرام یهیو عکلا آل کم یعنی چی گلابی خور گلابی یهیو رو یا یهیو گلابی رو. یهیا بلا رو. اینجا با اون که کممسترها مقدم شده ولی التباسی پیش نمیاد چرا چون خورندگی از یهیا صورت میگیره چون از کممسترها صورت آه. مشخصه یا مثلا بگم که جعلت تو جعل تو وارسی ابنی الان مردم مفعول ولی کدوم مفعول مقدم کدوم مردم جعل وارسی ابنی یعنی چی؟ کدومش مفعول اول کدوم مفعول ابنی مفقور اوله و وارسی مفقور دومه چرا؟ چون ممکنه که ابنه بگیم قرار دادم پسرم رو وارسم در احما اما نمیتونم بگم قرار دادم وارثم رو پسرم ممکنه وارث کسی باشه نمیشه وارس پسر کرد اگر غرینه داشته باشیم بله اگر غرینه نباشد که حالا درست شد دیگه ازاخی فرد برسو مورد دو و. او کان زمیرن متصرن ول مفعولو متاخرنن الف فائل زمیر متصره او کان فائلو زمیرن متصره فائل زمیره متصره درست شد ول مفعولو متاخرنن الف چیه؟ متاخره است از یعنی مثلا ضرب تو ضرب تو زیدن ضرب تو زیدن واجب است که تا مقدم بشه بر زید یعنی ضرب تو زیدن گفته شه و امکان ندارد که زید بر تا مقدم شه چرا جون اگه زید بر تا مقدم شه چه میشه میشه زرب از زیدن انا نه چون تا که متصلیه بیاد جدا بشه بره اون طرف معخرشه میشه انه دیگه میشه زره و زیدن انه و این غلط هست اگه گفتی چرا؟ چون قاعده داریم دیروز بود روز بود تو همین درس گفتیم که تا جایی که می شود زمیر را متصل آورد منفصل آوردن غلطه آه. تا جایی که میشه زمیر را متصل آورد منفصل آوردن غلطه در ضرب تو زیدان واجب تاول زید مقدم شو چرا به دلیل اینکه اگر بخوایم زید رو مقدم کنیم باید ضمیر متصلی رو تبدیل به منفصلی کنیم و این غلط محسر امکان چرا میگه مفعول متأخر از فعل باشه چون ممکن یک زمانی مفعول متأخر از فعل نباشه بلکه مفعول مقدم بر فعل باشه اونجا دیگه اصلا بحثمون نیست مثلا در ضرب تو بگیم چی زیدن زرفته. اینجا بر خود فائل که چی بر فعل هم مقدم شده این مورد بحث ما نیست اگر قراره که مفعول متأخر از فعل باشد اگر قرار است که مفعول متأخر از فعل باشد و فائل ما هم زمیر باشد باید فائل مقدم باشد چرا؟ چون اگر بخوایم معخرش کنیم و از زمیر منفصلیم او کان الفائلو زمیرن متسرن و مفعولو متاخرن انه فهده این مورد دفعه بس تا حالا فائل چند شد که واجهه بر مفعولش مقدم شد؟ شد و یمتنه یمتنه یعنی چی؟ یعنی ممتنه است که فاعل مقدمه بر مفعولش باشه یعنی چی؟ یعنی واجب است که مفعول مقدم بشه خلاف اصل بشه واجب است که مفعول مقدم بشه ممتنع است این کدام است اینکه فاعل مقدم بشه بر مفعول ممتنع است یعنی یمتن و زالکل اصل از. زال از. ازا اتصل بهی ضمیر ازا اتصل بهی ضمیر مفقوده زمانی که متصل باشد به فائل زمیره مفقود به فائل زمیری متصل شده باشه که برمیگرده به چی مفقود مثل اiza ابتلا ابراهیم را به تو قرآن این علاوه خدا چقدر دقیق ابراهیم رو مقدم کرد اiza ابتلا ابراهیم رب و هو ازاینی انگاه ابتلا آزمایش کرد ابراهیم را پروردگارش الان رب به چی چسبیده به زمیر اون زمیر به کی برمیگرده به ابراهیم ها یا مثل هازا باز تو قرآن داریم هازا, يومو. هازا يومو. ینفه او صادقی نه صدق و او از صادقی الان از مفعوله صدق فائله متصله به چیه؟ زمیر صادقی باز که مفعول چی شده؟ چرا اگر فائل مقدم شود غلط است؟ چرا اگر فایل مقدم شود تلت است جواب زمیر قایب زمیر قایب مرجع آن مرجع آن یا باید لفظن و رتبتن مقدم برانزمیر باشد یا فقط در لفظ یا رتبه یا رتبه مقدم باشد جایی که مرجع زمیر هم لفظاً هم رتبتاً مقدم است مثال بزنیم یه دونه براتون جایی که مرجع زمیر هم لفظاً هم رتبتاً مقدم است مثل جا از زیدون الا دارهی جا از زیدون الا دارهی یعنی چی؟ یعنی آمد زد به خونه الان دارهی هوش. حوش زمیر در لفظ مؤخر و زید هست یا نیست بعد از زید هست یا نیست پس در لفظ متعرخه در رتبه هم زید فائل است و زمیر دارهی زمیریه که امرهای مفعولون به واسطه اومده و میدونید که رتبه فائل بالاتر است از رتبه مفعول به واسطه رتبهش بالاتره فائل رتبهش بالاتر است از مفعول پس مرجع زمیر ما هم در لفظ بالاتر شد هم در رتبه. این کاملا صیح. اما اگر گفتیم از ابتلا ابراهیم بود از ابتلا ابراهیم ربه الان مرجع زمیر ربهو که ابراهیم در لفظ مقدمه ببینید دیگه مقدم است نیست اما در رتبه چیه مؤخر رتبه مفعول چیه متأخر است فاعل دیگه در لفظ مقدم است در رتبه چیه مؤخر اینم درسته گفتیم از یه جهت هم اگر مقدم باشه درسته آه. اگر بگوییم اگر بگوییم فیدارهی زیدون فیدارهی زیدون زمیر در اینجا مرجهش از نظر لفظی متأخره. دراست نیست؟ از نظر لفظی چیه؟ متاخر زیده دیگه اما از نظر رتبه مقدم است از نظر رتبه زید مقدم است چرا؟ چون است. مبتداست خبر. از نظر رتبه مقدم است پس در مثال سوم مرجع زمیر از نظر رتبه مقدم است در مثال دوم از نظر لفظ مقدم است. در مثال اول از نظر لفظ و رتبه این سه تا درسته ولی اگر ولی اگر مرجع زمیر هم از جهت لفظ و هم از جهت رتبه مؤخر باشد هم از جهت لفظ و هم از جهت رتبه مؤخر باشد کلام غلط است. کلام غلط است. مگر در چند موزه مگر در چند موزه که خواهد آمد. ماننده مثال. همون مثال از ابتلا ابراهیم رب او رب بحو رو مقدم کنید. میشه چی؟ اذا ابتلا رب ابراهیم ابراهیم. الان مرجع زمیر در لفظ مؤخر میشه یا نه؟ ملجه زمیر ابراهیم در لفظ شد مؤخر در رتبه هم مؤخر از ربه. چرا چون رتبه ابراهیم مفعوله ربطه به چیه؟ فاعله و این کلام میشه کلامه غلط. پس اگر ما میگیم اگر به فائل زمیری چسبیده است و برمیگرده اون زمیر به مفعول واجر است که فائل متأخر بشه و مفعول مقدم بشه فقط و فقط برای خاطر اینه که چی؟ مرجع زمین رو درستش کنید فقط و فقط برای خاطر اینه که مرجع زمین رو درستش کنید الله جلسه یه